بسم الله الرحمن الرحیم حالا در مورد رؤیت هلال در مورد رؤیت هلال پس های از یادی گفتیم هر سال این مشکل داریم اما جهالت به حدی بر مردم حاکم هست که علم را گاه گاهی دیگر تسلیم احساسات میشه چون تسلیم احقاف میشن اون واقعیت نمی نمیبینن و خود مردم دیگه موضع های مختلف میگیرند و گاهی علما رو کافر میدونن. ها میگه مولا نماز و خراب کرد او مولا روزه بر خراب کرد ها مولا خراب نکردن او چیزی یک چیز گفتن در حالت تو بیگی بعد رمضان هم طول سال دوازده ماه دیگه 11 ماه بوده یازده ماه روزی بشو کی معنیش وا شده این حرفات درست نیست حالا رؤیت هلالی که میآ سال اومده میگن آقا ماه دوشتبه بوده ما تایینین ساعت تا سا یک ساعت داخل افق مونده برای رحمت تماسی گرفته شو نمیاد کجا بود و چند شب جلوتر شب الی دو جلوتر بیرون گفتم چرا بیرون میام قم وا نگاه بکور گفتم خود علی خوب لچ مشکل وا بو نگاه کو ما چرا به زورگی چرا بهونظاری شبا خیلی پیام تا روز سو امروز صبح پیام نمیومد حالا چرا ماهکولف بوده، ماه بالا بوده، تا سا دین ساعت یک ساعت نوزان غروب نکرده؟ که حالا این ماه دوشه بوده، استشه بوده؟ این چیزها در دارن برای مردم میگن. و آقا من گفته خیلی خالدی دیگه من گفته قبول نداری بر علم نجوم کمی نگاهی بکن بعد دیا برای اعتراض چون که حالا سوادی که نداری چندان اعتراض محکمی می هم نتونم. تو احساسات داری اعتراض می علم نجوم یا علم هواشناسی این علم که مخصوصی همون کاشوناستش هست. کار هر کسی دیست که بیاد نظر بده فوران دیگه خلاف نظرون اگر شده باید محکوم بیکنه. این خود نجوم هم علمی دارد. در مورد خود رویت حلال احکام شرعی ما احکام شرعی ما همین احکام بر همین ماهای قمری هست. نمازها، آغات نماز، طلوع غروبها، ماه موارک رمضان و حج، برو این برو ماهی قمری هم این بدانی اول یاد گرفتن این علم بر امت فرض کفایی هست باید بدونن ماهار یاد بگیرن معلومات تا این حد باید دا داشته باشن برای تشخیص خود هلال. حالا در مورد حلال که یک شویه بوده یا دو شویه بوده حالت توضیح مختصری میدم تا برای اشوق واضح بشه اول در کل بیاییم برای همه احکام ما یک قانونی را اسلام تعریف کرده نماز داری، یک اصولی داره قانون داره معاملات اقتصادا یک قانون اسلام وضع کرده معاشرت هم قانونی داره حج هم قانونی داره حج بر روزای مخصوصی میشه حج فالکسی بگی میگه حج میکنی میم اینجوری نشود خود رؤیت حلال هم یک قانونی داره آمدن ماه شوال و ما رمضان قانونی داره قانون نبی کریم بیان کرده هم. فارمدن که سوبل رؤیت و افضل رؤیت ما رو دیدی روزه بگیرید ما رو دیدید افطار بکنید یعنی عید کنید اما اینجا تمام نہیں سے حدیث دامه داری حدیث داخل صحیح بخاری بھی یاد فينقم علیکم اگر این ما پوشیده شد یادیسی یعنی فضاای شما اونجا گرد و خاک بود فضای شما ابری بود فضا واضح و شفاف نبود افق قابل مشاهده نبود فينقم علیکم فک میلو اگر خود افق پوشیده بود پس کامل بکنی شابان را سی روز کامل این دستور پیامبر هست حالا در این روزی که رمضان شابان بود افق کلن تاریک بود افق قابل رویت نبود تاریک بود شمار اسلام دستور داده که فنغم علیکم اگر شما برش پوشیده شد فک میلو کامل بکنی سلاسین سی روز را این دستور اسلام را اگر ما متبع شریعتیم محتوی پیغام بریم این پیغامبر گوذه 29 روز دستی تاریخ بود 30 روز کامل کنی بعد صوابه شروع کنی ده. تمام شد رمضان روزه بگیری حالا این دستور اسلام اومده حالا کسی که دیدی باشی ندیده باشی حالا حرف بعدی است این واس قانون بعد این است قان... که این این که افوق بعضی علا عربستان دیده شده و اینجا علا مثلا بعضی حالا چرا این ماه کلوف علاغر شده حلت بعد میگاہ اما شبیه هسته شبیه این اون روز رمضان بوده حالا شما به گواهی همون کس در اعتراض میگه و گواهی بده که روزگارش تو دیدی بهرا او قسم بخواته مشاهده کردی با هم روزه میگیری قضا هم میگیری اما کسی حاضر نذرتله این مناطق اهل سنت نه تن در بلوچستان نه در بلوچستان نه در خراسان و نه در هرمز و هیچ جا مشاهده نشد همون روز ساعت 11:30 شب از هرمزگن برای من تماتی گرفت هستم خودشون گفتن داخل دریا باطل سکو من نگاه کردی ندیبیم یازدانی میشه صحبش کشو اختلاف شد که الله رمضان هست رمضان نیستی حالا این هستی دو شبه شدن این دو شبه ما اعتبار ندارد این ما دو شبه باشه یا ده شبه باشه این اعتباری ندارد این فقط رویت اعتبارده شما ببینید حالا شما دیدید دو شبه همور برای شما اگر شما 40 رو دیدید همون برای شما رویت است یک یک شری بوده دو شری بوده این معتبر نیست کلفتی ما معتبر نیست دلیل اشتی است چه فرمودن که سومو لرویت ببینید روزه بگیرید و ببینید افطار میکنید الا شما که ندیدید بعد داخل صحیح مسلم حدیثی هست حضرت عبد الله ابن عباس ابولبختری حدیث روایت میکنن میگه ما با حضرت عبد الله ابن عباس طارفی میرفتیم مکه مکرمه برای عمره با ابا عمره در وادی نخلق رسیدیم ماه رو الان مشاهده شد به هم دیگه نشان میده می ما نگاه کن میره تو نگاه بکن تو نگاه بکن به این صوره شد باید گفت آئی ما ابن سلاس ابن لیلتین این دو شبه هست سشبه هست این ماه سشبه هست همه چیز ها رو گفتن اختلاف کرد باید گفت دو و باید گفت سشبه هست رفته پی گفت حضرت ما ماه رو دیدی اما دو شبه بوده سشبه بوده خیلی بزرگ بوده حضرات فرمودند که کی دیدی شما گفت فلان تو همون شب که دیدی همون شب اعتبار از باب دور معتبر نیست که دو شبه هست یا سه شبه هست اون معتبرنی همون دیدل شما معتبره این حدیث داخل صحیح مسلم آمده اگر استغاضی داری ما اونجا کمی نگاهی بکنید متاسفانه بعضی سودجو بخوان براله علی علما موذی و اونها رو به چالش بکسان و رو محکوم بکنه داره خیلی خوب در ازهان مردم این ایت پراکنی میکنن اگر دانسته در این کارو میکنه در گناه بسیار بزرگ این هغه گرفتاره باید توبه بکنه اگر توبه نکنه در عذاب بزرگ گرفتار میشید چرا چون داره مسلمان ها رو لس به شریعت اسلامی بدگمان میکنه این دا بعض دانسته ایشا ایت پراکنی میکنه تا علما رو محکوم بکنه تا حقانیت باطل خود را ثابت کنه چون می کنم ثابت باطل ثابت نمیشه این هم صحیح مسلم و کتابی هست که اصطحال کتب بعد کتاب الله در باید از مسلم هست در نظر باید بخاری در نظر خیلی مسلم هست کتاب اینجا آمده این هست از خود علمی حالا بریش توبه بکنی داری مردم را بدگوان میکنی جستا بروز تا امروز مردم گرفتارند و هر روز سوال میپرسند، تماس میگیرند هر روز تکلیف روزها چی میشه. وزابی گیم قازان گیم پول بدهید چکار کنیم مردم نگران پریشانه در کل استان ایشها ی رفته اما زدیدگان خود علم نجوم حالا همیشه ما سوادداری وقت ما بگین سوادداری حالا سواددار باشید اینجا جاهدی سواددار نباشد اما اینجا سواددار باشه از سواد خود و کار بگیرید این زمین کره است زمین کره است خود ماه داری یک مداری در حرکت میکنه در مدار برج هست برج هست. زمین یک مداری داره، خورشید یک مداری داره، زهال و مرگ مداری دارن، یعنی در مدار داره حرکت میکنن. حالا حال افوقی که برای عربستان تعریف شده اون افوق برای ما نیست اگر افوق ما با عربستانی که هست، چرا نمازها رو با هم نمیگیریم چرا سردگروی سرد با هم تفاوت داره، چرا نماز زور مغرمه با هم تفاوت داره اینها ها خود این ها دلیل برای گرد بودن خودش زمین ها زمین گیرده اگر همستات می شود حال یک افق تعریف می کردن برای همه دنیایی که بود اما زمین جوری نیست زمین گیرده هست حالا این که ابن رشد در کتاب خودش آورده که بر اتفاق جمهور و عیم اربا در بلاد بایده شارحات دور دوران و افق آنها تفاوت داره اینها با, با خودشان ماهروبینه. این معتبر نیست که یک جمع مشاهده رو برای کل جهان. حالا خود سرزمین مکه مکرمه من تری استوائی هست. خود جا میشه تاجای تا. تعریف که اما مناطقی که سواایی نیستن، نیمکره جنوبی مگرارد در همین حالایی که ما در اکثر ما داریم به سرمی برین در امریکا، در ژاپن، در استرالیا، در کشورهای نیمکره جنوبی، ونزوئلا نزدیک با مغاز، در عفته تلویک میکنه. ما داریم به غروب نزدیک میشین آن دارن به فجر نزدیک میشن. زمان اینجا عفته طلوع میکنه، اونجا غروب میکنه، حالا نشکار کنن. بعد روز بگیرن؟ یا برگردی بار گردی بی اصولی کے اس طرح تعریف کردے افتر الرویت دیری دی افتار بکنی یعنی که نبی کریم وقت داخل مدینہ منورہ بودن آیا بر اہل مکی قاصد میفرستاد شما مار جیبی نہ جیدی یا روزا اور غذاب اس ان جوری نہ بوده یہ رویت ہا ر اعتماد اعلی مسئلے بعدی علم نجوم نجوم چہ این خورشید و ما یہ دارا حرکت میکنند دای گائی در محا قرار میگه با هم در یک موازات قرار می گیدن. و در یک مواظد قرار بگیرند نور خورشید ماه رو پوشش میده و قابل رؤیت نیست این ماه در آسمان گم نمیشه همیشه است این میره زیر زبی گم میشه دوباره میاد بیرون ماه همیشه وجود داره اما گاه گاهی در مدارش مستقیم در شعاع خورشید قرار می گیره در شب خورشید قرار بگیرد قابل رؤیت نیست چون نور خورشید نمیگذاره باهم غروب میکنن باهم طلوع باهم غروب میکنن اما تا زمانی که خورشید ماه از خورشید بعضی گفتن دوازده درجه و بعضی گفتن 10 درجه و بعضی گفته هشت درجه تا زمانی که فاصله ماه از خورشید هشت درجه نواشه قابل رؤیت نیست که بعضی میگن بعد 10 درجه باشه این باید بین خورشید و بین ما هشت درجه تا دوازده درجه فاصله باشه. بعد از اون قابل رویت اگر هم دو درجه باشه، سه درجه باشه، چهار درجه باشه قابل رویت نیست. هر درجه چهار دقیقه هست. هر درجه چهار دقیقه هست. حالا مثلن خورشید غروب کرده بعد چهار دقیقه ماه غروب میکنه میشه درجه. 8 دقیقه بعد ماه غروب میگه دو درجه. بعد دوازده دقیقه بعد غروب ماه میشه سه درجه. والحس درجه اعلی جا یعنی 24 دقیقه باید بمانه تا قابل رؤیت بشه این حداقلش است یعنی باید داخل آسمان ما 24 دقیقه بماند تا قابل رؤیت بشود حالا روز اول که میگن حالا ماه قلوف بود حالا ماه احتمالاً هر روزی که تفاوت روز بعدش چون داره زمین هم حرکز میکنه ماه هم میکنه هر روز تفاوت ماه با, زمی... با غروبش با غروبش با روز قبلش یک دقیقه هست مثلا به طور مثال اگر امروز اگر امروز ما ساعت 6 غروب کرده یا ساعت 8 غروب کرده فردا ساعت 8 و 51 دقیقه غروب میکند متوجه میشید نه اگه امروز ما غروب کرده ساعت 6 فردا ساعت 6 و 51 دقیقه غروب کند چش پای جاده غروب میکنه اگر هفت غروب کرده فردا ساعت 7 و 50 دقیقه غروب حالا خلافش بنآورید اگر ماه روز اول شما ندیدیم اگر دو درجه پشت خورشید باشه یا سه درجه پشت خورشید باشه چهار درجه پشت خورشید باشه یعنی 16 دقیقه 16 دقیقه اونجا بگیریم و پنجاه دقیقه اینجا بگیریم بالا یک ساعت قرار میگیره پس روز بعد اگر داخل آسمان مانده همون یک شبیه است که اون روز قابل رؤیت نبوده حالا کلوپ شده چون که ماه بود روز اول روز بعدش که تفاوت زیاد افتاد 51 دقیقه افتاد اینو علم نجوم داره میگه نجوم امروزی هم میگه و علم نجوم قدیمی ها هم چیزو میگفتن حالا این نمیذار شو انکار بکنی اگر همه شما به ما قبول نداریم اینجا هم خیر سرسدا هم بکنید این سرسدا شما معتبر چرا چون علم اینو ثابت کرده البلجو این چیزو ثابت کرده واسه ثابت سودی حالا هر چیزی ثابت کنه من غبول ندارم اینا دارن دروغ میگن حالا دیگه حرفو معتبر نیستید حالا امروز نگاه بکنید خورشید ما حساب بکنی که غروب میکنه فردا حساب بکنید راحت جا میاد نتیجهش امروز نگاه کن به طور بسیار ساعت 18:20 غروب هست ما رو نگاه بکنی چه گم میشه بعد از دو نگاه فردا نگاه میکنید چند طول میکشه خود به خود به ما هر شما می رسید که هر روز با روز بعد پنجاه دیگه تفاوت داره پس اگر روز اول پشت خرشید بوده اما شعای خرشید رو برای رویت نگذاشته ده دیگه پشت بوده روز بعدش یک ساعت اگر می و قامل داخل آسفان ظاهر می شود این هست خود تفاوت ما و رویت اون که حالا مردم خیلی قوغا دارن میکنن. زیاد نگران نباشید روزها درستا چو هیچ جای اینج مناطق ما رویت نشودید این که میگم چرا جنوبیها اعلام کردن که روز دوشنبه رمضان هست خاطر تر جنگ که اونها روز جمعه اعلام کردن دوشنبه رمضان هست در اخبارات اونها برای خود من آمده که روز جمعه یا روز پنجشنبه بود که اونها گفتی بودن که رمضان ما روز دوشنبه هست رو محاسبات خود حساب کردی بودن بدون از رویت اما ما مانوری که ما رو باید رویت بکنیم. نه تنها هایی کرد اوقا بکنه سرصدا بکنین اعتقاابتونو درست کنید بعد دومان نباشید بعد دمانی گناه بزرگی هست. به داخل قرآ لارببرای فرمننج ان بعضزن اسمن بعض از دومان ها گناه هستند بخصوص نسبت به دین باشه بعضی هم بالاا خوب این میکنن و کل مردم نگاران پریشان کردهاند.